نوار شماره یک کتابه، گاتها یا سرودهای آسمانی زرتشت. به قلم موبد، فیروز آذرگوش اصب ناشر، مؤسس فرهنگی انتشاراتی فروهر چاپ دوم، سال 1379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 هفت هات یا فصل صد و ده بند به اضافه یک بند سراغاز از صفحه بیست و هشت تا شست و یک ودگات از هات چهل و سه تا چهل و شش چهار هات یا فصل شست و شش بند از صفحه شست و دو تا هشتا دو پنج از حات چهلو هفت تا پنجاه چهار حات یا فصل چهلو یک بند از صفحه هشتا شش تا نوودو هفت وهم خشترگات هات پنجاه و یک فقط یک هات یا فصل بیست و دو بند از صفحه نود و هشت تا صد و چهار و هیشتوا یشتگات هات پنجاه و سه فقط یک هات یا فصل 9 بند از صفحه صد و پنج تا صد و هشت پیشگفتار از صفحه یک تا صفحه بیست و هفت. جمع 148 بند به اضافه یک بند سراغاز صفحه یک پیش گفتار نظر به اینکه جلد اول و دوم گاتاها سرودهای آسمانی اشوزر تشت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 احون بدگات از حات بیست و هشت یسنا شروع و تا حات سی و چهار ادامه دارد. جمعا هفت فصل بوده و به نام یشتگاهان نیز معروف است که معمولا هنگام انجام مراسم پرسه ختم توسط موبد خانده می شود. اشت دارای چهار فصل بوده از هات چهل و سه یسنا شروع و به حات چهل و شش خاتم میابد سپنتومدگات نیز دارای چهار فصل میباشد که از حات چهل و هفت یسنا شروع و به حات پنجاه خاتم میابد وهم خشتر و یشتگات هر یک دارای یک فصل میباشند که حات پنجاه و یک یسنا را وهم خشتر و حات پنجاه و سه را و هیچ تو آیشت مینامند. به زبان عوستایی بسیار کهن سروده شده و از لحاظ قدمت با ریگ ید هندوها برابری می‌کند و از سخنان خود اشو زرتشت میباشد. هرگاه بتوانیم زمان گاتاها را تعیین کنیم، زمان اشو زرتشت سراینده این سرودهای نغز را نیز میتوان تعیین کرد.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 در صورتی که گشتاس به هخامنشی که در حدود قرن ششم قبل از میلاد میزیست، پدر داریوش بزرگ و فرمانروای کوچکی بیش نبوده و تقریبا به طور گمنام زندگی می‌کرده است. چنان که داریوش در سنگ‌نوشته خود هیچ عنوانی برای پدرش ویشتاسپ قائل نشده است، ولی خود را شاه شاهان مینامد.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 و 48 سیلابی و برخی هم دارای شش مصرعه 12 و 8 هجایی می باشند به طور مختصر می توان گفت کهانترین، نقزترین، پرمغزترین، اندیش برانگیزترین، والاترین و مطمئن ترین بخش اوستایی را گاتاها تشکیل می دهند اکنون ببینیم گاتاها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 و مبشر یک تا پرستی مطلق میشناسد. چنانکه در بند نهم از هات 46 اشتا و گات می‌خوانیم کیست آن رادمرد بزرگ و نخستین آموزگاری که به ما آموخت تنها تو را ای پروردگار شایست ترین ذات مورد ستایش بشناسیم و تو را داور پاک کردارها و سرور راستی بدانیم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 و نیازها و فدیه های خونین برای جلب رضایت آنها انجام میشد هشتو زرتشت مردم را به پرستش یکتا خداوند بی همتا و آفریننده کائنات دعوت فرموده و تنها او یعنی اهورا مزدا هستی بخش دانای بزرگ یا خداوند جان و خرد را سزاوار ستایش و پرستش می شمرد.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 آموزش ها و پیامهایی را که تا به حال شنیده نشده است، برای شما آشکار خواهم ساخت. این دوبند به خوبی نشان می دهد که قبل از عشوزر توشت کسی به عنوان آموزگار و رهبر بشر ظهور نکرده بوده است. زمنن برای شناخت پروردگار یکتا می‌فرماید، به دیده دل رجوع کنید، زیرا،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 و پروردگار یکتا دانسته و او را سزاوار نیایش و ستایش قلبی میدانند. برابر عشت ودگات، هاات چه و چهار شذرهشت به طور شاعرانه، اهور را آفریننده زمین و آسمان و آب و گیاه و حیوان و انسان و خورشید و ماه و ستارگان و کرات درخشان آسمان دانسته،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 همیشه حاضر و ناظر بر اعمال بندگان خیش، بخشنده و بخشایشگر و مهربان، تغییر ناپذیر و جاودان، از همه چیز آگاه و دانا، توانا بر همه کار، تیزبین و دوربین، بدون شریک و بی بیهمتا، فریفت نشدنی، پدر و دوستی مهربان و سمیمی، ای که در گاتاها بدان اشارات مکرر شده است، الهامی بودن سخنان اشوزر از جانب اهورا میباشد باشد. امید است کسانی که ناآگاهانه وخشور بزرگ ایران را فیلسوفی بیش نمی دانند، به موارد زیر توجه نمایند. در سرآغاز اهون بدگات چونین آمده است، سراسر اندیشه و گفتار و کردار اشوزر تشت، الهامیست از سوی خداوند یکتا که امسان را به سوی رسایی و خوشبختی راهنمایی می کند. و در بند یازده از حات بیست و هشت یسنا می‌فرماید: ای آفریننده بزرگ و دانا، از راه خرد و بینش و الهام راز پدید آمدن آفرینش را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 بر تاریکی و سپنتامینو، مینو بر انگره مینو اشارات مکرری شده است که به ذکر برخی از آنها مبادرت خواهد شد. صفحه یازده در بند دوم از هات سی و یسنا فرماید کسی که با اندیشه و گفتار و کردار و با بازوان خیش با بدکاران پیکار کند،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 از دروغ که همان زندگانی مادی و وسوسه انگیز است پرهیز کنید. از پیشرفت ریا و فریب جلوگیری نمایید. پیوند خیش را با دروغ یک بار و بدانید آن خوشی و سروری که از راه نادرست و بدبختی و بیشارگی دیگران به آید جز رنج و افسوس چیزی به بار نخواهد آورد. و کاران و دروغ پرستانی که در پی تباهی درست کردارانند به راستی زندگانی معنوی و آرامش روحی خود را از بین خواهند برد موضوعی که در گاتاها ها بدان اهمیت بسیار داده شده است انسانیت و مردمداری آدمیان میباشد باشد زرتشت بیشتر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 و سرچشمه نیکی ها قرار گیرد احریمن در نهاد بشر وجود دارد و بستگی به اندیشه ویرانگر شیطان صفتان و ددمنشان دارد و به هیچ وج وجود خارجی ندارد به عبارت دیگر میتوان سپنتا مینو و انگره مینو را به فرشت خویی و اهرمن صفتی تعبیر کرد که هر دو در خوی و خصلت و اندیشه و نهاد انسان قرار دارد و از او جدا نیست. به آخر بند سوم هاتسیه یسنا دانایان و فرزانگان راه نیک و درست را برمیگزیند ولی نابخردان چنین نخواهند کرد و راه خواهند رفت. شخص نادان و کوردل،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 در گاتاها دروج یا دروغ را مادر تمام گناهان و بدبختیها دانسته و درگوند یا دروند یعنی هواخواه دروغ و دروغگو را دشمن دین راستین ازدایت خوانده و از آن به بدی یاد می‌کند. دیویاسنا ها یا هواخاهان خدایان پنداری و دروغین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 و در بداموزی و منحرف ساختن مردم کوشش می گاهگاهی گاه گاهی اشوزرتوشت از کندی پیشرفت کارفیش به سطوح می آید و زبان به شکوه می گشاید ولی هیچگاه در ایمان او نسبت به اهورا مزدا خلالی وارد نمی گردد گاتاها نشان می دهد چگونه وخشور بزرگ با صبر و شکیبایی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 چنانکه در بند هفته از حات سی و یک میفرماید دانا باید با دانش خیش نادان را آگاه سازد، نشاید که نابخرد گمراه ماند. اشوزر زرتشت پس از یک عمر تلاش و کوچش و انجام معموریت ارشاد و رهبری مردم به سوی راستی و یک پرستی، سرانجام،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 از تمام بخش‌های گاتاها آورده شده است، بهره نیک گیرند و در زندگانی به برند. در پایان لازم می‌داند نظرات روانشاد دکتر ایرج تاراپور، والا استاد علی قدرخیش و همچنین پروفسور میلز انگلیسی را در مورد سرودهای آسمانی زرتشت برای اطلاع خوانندگان محترم در زیر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 به درک گفتار و مفاهیم درونی سخنان پیامبران بزرگ نایل آیند بنیانگزاران و سراینده گاتاها از روی خرد و دانش بسیط و پرژرف سخنانی پر از حکمت و فلسفه ایراد کردند گفتار این نوابغ جهان را نمی توان جاهلان رها کردن تیری در تاریکی دانست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 کلام مقدس و پرورش امشاز پندان پرتوهای خداوندی تأکید شده است در صورتی که بدندیشان و سیهدلان را در گاتاها میبینیم از وسپسه های اکومن یا احریمن گمراه گردیده و به زشکاری و ستمگری خود مشغولند به طوری که روان آفرینش از ستمگریهای آنها به آمده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 تعین و نوید داده می شود از آن به بعد به یک سلسله نیایش و ستایش و درخواست و موعظه و اندرز برمیخوریم. در خلال گاتاها به جنگهای خونین و حمله و حجوم دشمنان یک تا ولی از لحن کلام زرتشت و سپاسگذاری او به درگاه اهورا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 سراینده گاتاها نیست پس شخص بینام دیگری که اندیشه روح و قلب و زمیرش در راه اشاعه و انتشار مذهب یکتاپرستی صرف گشته است باید این مهم را انجام داده باشد اهمیت زرتوش را می توان در اقدامات شخصی پیامبر دانست. گرچه نام بیشتاسب و فرشوشتر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 نظیر است. اندیشه بلند و شگرف او در تجسم بخشیدن به فروزگان ویژه پروردگار به صورت امشاسپندان که پرورش آنها موجب تسکیه روح و رستگاری بشر می‌گردد چنان استادانه بیان شده است که دانشمندان عالی قدر امروزی از درک اینکه که عشا و وحومن به صورت فرشتگان،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 امکان ندارد هنگامی که خواننده گاتاها به زمان بسیار کهن که این سرودهای مقدس سراییده شده و به تمدن نسبتا ابتدایی عصر میاندیشد از بیان حکیمانه پیامبر ایران ناگزیر زبان به تحسین و تمجید میگشاید راجع به احساسات شخصی زرتشت میتوان گفت او نسبت به اهورا مزدا ایمانی خلال و استوار داشت و به او عشق می ورزید واجه زرازدائیتی که دارای مفهوم خلوسنیت و صفای باطن است در مورد پیانبر ایران مصداق دارد از مفاد گاتاها می‌دانیم دانیم که زرتشت شخص با شهامتی بوده ولی از جنگ و خونریزی پرهیز داشته است در مقابل سختی ها و ناهمواری ها خودداری زیاد مینمود ولی برای فیروز شدن وردوشواری ها ایستادگی و سرسختی نشان می‌داد. در گاتا ها همه چیز جدی و واقعی است. روح آفرینش به طور شاعرانه در حال استقاسه است و اهورامزدا و امشاز پندان را در حال صحبت کردن و گوش دادن و دیدن می آبیم. همه چیز در گاتاها عملی است. گرهما، بندوه، کویان و کرپان و اوسیخش دشمنان زرتشت، گولهای افثانهی نیستند. هیچ مار و مردم شهر و روستا را تهدید نمی کند و هیچ پهلوان افثانهی از مردم حمایت نمی کند.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 گاهی برخی از دوستانم می‌پرسند چه چیز باعث شد که به آین زرتشت و مطالعه گاتاها رویاوردم در پاسخ باید بگویم من در سنین جوانی اشتیاق فراوانی به مطالعه و تحقیق در رشته عرفان و تخصص در این علم داشتم در سال 1872 میلادی که به اروپا آمدم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 بر مشکلات زندگی چیره خواهد گردید، مسلماً شکست در اندیشه اون راه نخواهد یافت. همین امر باعث شده است که زرتشتیان پس از گذشت طوفان‌های سهمگین و بلایای خانمانسوز هنوز پای مانده، در هندوستان از همه پیشرفتهتر تر و در جهان مترقی پیش از همه رو به سوی فروغ و روشنایی،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 فروز سروش و عمرداد ماه 1350 یزدی برابر با 31 5360 خورشیدی موبت فیروز آذرگش است صفحه 28 سراغواز اهونودگات هات 28 یسنا سراسر اندیشه و گفتار و کردار اشو زرتشت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 برای کارهای نیک مقرر فرموده است، کوشش خواهم کرد تا آنجا که مرا توان است، مردم را بیاموزم که به راستی گرایند و درستی پیش سازند. بند پنج ای اشا، مظهر راستی و پاکی، که به زیارت تو نائل خواهم شد؟ ای وهمن،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 بهشت ارزانی داری بند نه ای اهورا مزدا همواره کوشش میکنم سرودهای ستایش خود را سمیمانه نیازت کنم و هیچگاه اشا و وحومن مظاهر پاکی و نیکمنشی را به خشم نیاورم زیرا اشا وحومن و خشت را توانا را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 برای چه مرا بیافریدی چه کسی مرا کال بوده هستی بخشید خشم و ستیز و چپاول و غارت و گستاخی و تجاوز هنجا را فرا گرفته مرا جز تو پشت و پناهی نیست بنابراین نجات بخشی که بتواند مرا از این تنگنا رهایی بخشد به من نشانده. بند دو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 و در آینده چه کارهایی به وسیله آنها انجام خواهد شد چون داوری این کار تنها با اهورا مزداست بنابراین آنچه چه خواسته اونست ما بدان دان خوش نودیم بند پنج ایدون من و روان آفرینش هر دو با احترام و دستهای های راشته اهورا را ستایش کرده و از اون خواستاریم که هرگز به نیکوکاران و پارسایان و رهبران آنها گزندی نرسد و از حمله دشمنان و بدکاران در امان باشند. بند شش آنگاه اهورا مزدای دانا که با دانش خیش نیروی حیات می‌بخشد چنین گفت آیا یک نفر سرور دنیوی شایسته؟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 بند یازده روان آفرینش به سخنان خود ادامه می دهد. عشا، و, و خشت چه وقت به ما روی خواهند آورد؟ که ای مزدا آین تو را انجمن بزرگ مغان خواهند پذیرفت؟ ای هستی بخش، اینک که برای ما یار و مددکار رسیده است،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 برای این مأموریت دانسته و او را به عنوان رهبر برای ارشاد مردم برمیگزیینند. صفحه سی و6. بخش بنیادی کیش زرتشت بند یک اینک برای جویندگان حقیقت و مردم دانا از این دو پدیده بزرگ سخن خواهم گفت و روش ستایش خداوند جان و خرد و نیایش وحومن یا منش پاک را بیان خواهم کرد. و همچنین از دانش الهی و آین راستی عشا گفتوگو خواهم نمود تا با برخورداری از رسایی نور حقیقت را دریابید و از نعمت فردوس بهرهمند گردید.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 و با اندیشه روشن و جرفبینی آنها را بررسی کنید هر مرد و زن راه بد را شخصا برگزینید، پیش از فرارسیدن روز واپسین همه بپاخی خیزید، در گسترش آین راستی بکوشید بند سه آن دوگوهر همزادی که در آغاز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 به حال اجتماع مفید و خوب نباشد ادامه متن صفحه سوهفت بند پنج از این دو گوهر همزاد هواخواه دروغ زشتکاری را برگزید ولی سپند مینو آنکه دارای گوهری پاک بوده و خود را با فروغ فناناپذیر دانش آراسته است راستی را برگزید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 یا احریمن و خشم که انگیزه است روانه شدند تا بدین وسیله زندگی مردم را تباه سازند بنده هفت کسی که از نیروی معنوی و منش نیک و راستی و پاکی بر صفحه سی و هفت بنده هواخواهان دیو یا بودپرستان چون در شک و تردید بودند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 ولی برای دلدادگان مزدا خوشایند و شادی بخش است. پانویز دلدادگان مزدا کسانی هستند که به خداوند اخلاص میورزند و ایمانی صادقانه دارند. ادامه متن بند دو چون وسوسه‌های شیطانی منع از آن است که راه بهتر را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 ای خداوند جان و خرد و ای کسی که همیشه و در همه حال یکسانی، با روح مقدست فروغ ایمان را در قلب ما برافروز. بنده 8 ای خداوند جان و خرد، هنگامی که در اندیشه خود تو را سرآغاز و سرانجام هستی شناختم، آنگاه با دیده دل دریافتم که توی سرچشمه منش پاک،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 حات بند یک برای برخورداری از بزرگترین خوشبختی، خیشان و همکاران و یاران نمازگذارتو میباشند. و دیوان یا پرستندگان قوای طبیعت نیز، فهورا مزدا خداوند جان و خرد را ستایش کرده و همگی این آرزو را دارند. پروردگارا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 قرار داشتند اعضای انجمن مکها و یا انجمن برادری اشو زرتوش را نیز افراد سه گروه مذکور تشکیل می‌دادند زیرا آنها افرادی از خود گذشته و نسبت به پیامبر وفادار بودند البته می‌توان واژه خائتوش را به اشخاص متکیب نفس و با اراده‌ای بسیار قوی نیز ترجمه کرد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 حاضر به فدای جان خیش بودند بند دو اهورا خداوند جان و خرد که از روی حکمت و دانش بر جهان سروری میکند، در پرتوه شهریاری خیش به آنها چنین پاسخ داد پانویز منظور سه گروه یاد شده در بند اول میباشد.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 کردار مهیلانه و ریاکاری های شما از دروغ و خودستایی سرچشمه گرفته است، از این رو در سراسر گیتی به بدنامی شناخته شده اید و مورد تنفر مردم می باشید. بند چهار ای بودپرستان، شما اندیشه مردم را چنان پریشان ساخته اید که آنها مرتکب زشترین گناه گردند،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 و با آموزش نادرست و نوید سروری و بزرگی هواخواهان دروغ را به کردار زشت و ناپسند وادار ساخت همان گونه شما نیز مردم را گمراه ساخته و از زندگی کامل و خوشبختی جاودانی محروم ساختید پانویس در اینجا منظور از دیبها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 او انسان را از توجه به سرمایه گرانبه های راستی و درستی و اندیشه پاک باز می دارد. ای خداوند خرد و ای مظهر پاکی و راستی با سخنانی که از قلب و روحم هم تراوش می کند به درگاهتان گله کرده و پناه می‌جویم. بند ده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 آنان در اثر کجندیشی گرگهای درندهی چون گرهما و کرپان‌ها را بر راستان و پاکان برتری داده و برای هواخواهان دروغ آرزوی سروری می ولی مزدا خداوند خرد برای آنان کیفر سختی مقرر داشته است. بند سیزده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 کاویها دشمنان زرتشت و فرمانروایانی که حاضر به شنیدن سخنان متین و الهام بخش پیامبر ایران نبودند و با کمک گرهما سعی در نابودی زرتشت داشتند. ادامه متن. آنان از هواخواهان دروغ و گمراهان یاری جویند و برای جهان آفرینش فساد و تباهی آرزو کنند. بدین امید که شکست ناپذیر آنها را یاری خواهد کرد. پانویز اشاره به ایزد هوم است که با صفت شکست توصیه شده است. این ایزد طرف توجه دروف پرستان بوده است. ادامه مزن بند به راستی،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 بهتر از هر چیزی است ای خداوند خرد و هستی بخش بزرگ تو را توانایی برهم زدن نقشه کسانی است که مرا به آزار تهدید می‌کنند من کوشش می کنم نفرت و دشمنی هواخواهان دروغ را نسبت به پیروان و دلباختگان تو باز بازدارم اهونودگات فات بند هر کس در این جهان باید برابر آیین ازلی عشا یا راستی که بنیاد زندگی را تشکیل می‌دهد رفتار کند زیرا رتویا رهبر روحانی با کمال بی‌نگری و از روی وجدان نسبت به نیکان و بدان داوری خواهد کرد و کردار نیک و زشت آنها را با دقت خواهد سنجید. نواره شماره 3. کتاب گادها یا سورودهای آسمانی زرد به قلم موبد فیروزه آزرگوش است. صفحه 52. اهن وردگاد حاته 3 و, دو. حات سی و سه، بند 1.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 که از روی راستی و قلبی پاک تراوش می کند بپذیر و بخشایش رسایی و جاودانی را به من ارزانی فرما. بند نه، ای خداوند خرد این دونی روی بزرگ افزاینده راستی و پاکی را که از آن توست تنها با خرد و دانش و فروغ بسیرت و بینش به دست آورد. پانویز منظور از این دو نیروی بزرگ رسایی و جاودانی است که در بند پیش بدان اشاره شده است. ادامه متن بشود که در پرتوه بهترین منش از بخشایش این دو نیروی همکار و یکسان برخوردار گردیم. صفحه پنجاه و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 زرتشت همه جسم و جان خود را با برگزیده ترین منش پاک خود چون پیشکشی بیارزش به خداوند خرد نیاز می کند و با فرمان برداری از دستورات الهی و سرسپردگی کردار و گفتار و همه نیروی خود را به آشا ارمغان می آورد. نویس منظور است که زرتوش با تمام نیرو و سرسپردهگی کردار و گفتار خود را با راستی خواهد داشت و در راه راستی جان خود را فدا خواهد نمود ادامه متن صفحه 57 خاط 34 بند 1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 کسی دیگر را جز تو نمی شناسم و خواستارم ما را در پرتو راستی یاور و پناه باشی. بنده هشت به راستی دروغ پرستان با کردار زشت خیش ما را حراسان سازند، چونکه آنان تباهی و ویرانی بر مردم آورند و نیرومندانشان بر ناتوانان ستم روا دارند،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 از ما دوری جویند پانویز اشق و فداکاری و ایمان و فروتنی از فروزگان آرمیتی میباشد باشد ادامه متن. بند ده مرد خردمند با آگاهی از اینکه عشق و ایمان به خدا سرچشمه واقعی راستی است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 پانویز اشاره به کسی است که دیگران را خوشبخت سازد و در بند اول مورد بحث قرار گرفت. ادامه مطر کسی را که آرزوی روشندلی است و برای رسیدن به آن تلاش می کند، ای مزدا در پرتوه خرد مقدس و آگاه خیش بدون روشنایی درون ارزانی دار. پروردگارا در پرتو اشااء قانون ازلی راستی و پاکی ما را از حکمت و دانش که از بخشایش وهومن است برخوردار ساز تا طی زندگانی دراز از شادی و سرور بهرهمند گردیم بند سه به راستی کسی از بهترین نیکی برخوردار خواهد شد که در جهان مادی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 که منش پاک به من روی آورد و نور حقیقت و معرفت به قلبم راه یافت. پرسیدم چه کسی را خواستاری پیش از همه مورد نماز و ستایش قرار گیرد. پانویز پرسش کردن زرتشت از وهومن منظور بررسی حقایق با دیده روشنبین و اندیشه ژرف و نیک است.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 ای هستی بخش یکتا پرسشی از تو دارم و خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی آیا آن که بیان خواهم کرد حقیقت دارد آیا عشق و ایمان به خدا در پرتو کار نیک راستی و درستی افزایش خواهد یافت آیا در پرتو منش پاک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 از رسایی در زندگی برخوردار گردم پروردگارا چگونه و با انجام چه کویی هایی روانم از شادی و آرامش بهرهمند خواهد شد بند نو ای هستی بخش یکتا پرسشی از تو دارم و خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چگونه وجود خود را در بستر در انجام خدمت مقدس با تمام نیرو و توان به تو کنم این حقیقت را دانش دین به من میآموزد ای مزدا فدایی تو در پرتو راستی و منش پاک و خدمت به مردم با تمام نیرو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 و خواستارم حقیقت را بر من آشکارسازی پروردگارا براستی تو توانا هستی که در پرتوء عشا مرا از گزند فریبکاران و نفرت دروگویان نگهداری فرمایی هنگامی که دو سپاه دشمن در برابر یکدیگر سفارائی کرده و به هم میتازند آنگاه ای مزدا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 ای هستی بخش یک تا، از تو پرسشی دارم و خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چگونه در پرتو عشا و راستی و پاکی پاداش دلخواه را که عبارت از تسلط بر دهمادیان حواس با نیروی اسب اندیشه است به دست خواهم آورد و به روشنایی حقیقی و سرمدی خواهم رسید.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 ای مزدا، از تو می پرسم چطور امکان دارد دیوان از شهریاران نیک باشند. کسانی که برای ارزای هوسهای خیش و انجام مقاصد خودخواهانه میجنگند و با کمک کرپان و کاویان و اوسیخش جهان را به دست خشم و نفرت سپرده و جهانیان را به ناله و فقان در میآورند.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 گرامی دارند مزدا با آنان چون دوستی صمیمی و برادر و پدری مهربان خواهد بود و راهشان با کسانی که یک تا را خار شمارند و از اون بزشتی یاد کنند کاملا جداست صفحه 79. حات بند یک به کدام سرزمین رویاورم؟ به کجا رفته پناه جویم؟ خیشانم مرا ترک گفته و دوستانم از من روی یردانند. از همکاران کسی مرا خورسند نمیسازد و فرمانروایان روایان کشور نیز همگی،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 از پیشرفت به سوی هدف‌های مقدس خویش یعنی راستی و درستی و آبادانی شهر و کشور باز دارند. آنها با کردار خمانه خود به زشتی و تباهکاری مشهورند. ای مزدا، کسی که با تمام نیرو و وجودش بر علیه خواهان دروغ پیکار کند،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 او پیروب راه عشا بوده و زندگیش سرشاید. نوار شماره چهار کتاب گادها یا سرودهای آسمانی زرتشت. به قلم موبد فیروز آزرگوش اسب صفحه هشتاد بند چهار هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و پرهیزکاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خیش یعنی راستی و درستی و آبادانی شهر و کشور باز دارند آنها با کردار خصمانه خود به زشتی و تباهکاری مشهورند ای مزدا کسی که با تمام نیرو و وجودش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 به گرمی پذیرا شود، اون پیرو راه عشا بوده و زندگیش سرشار از راستی و درستی می باشد. ای هستی بخش دانا، اون است که با نیروی دانش گمراه را از تباهی و نیستی رهانیده و او را به خودشناسی و اتکای به نفس رهبری خواهد کرد. بند شش هرگاه مرد توانا، شخص طبحکار را به راه راست هدایت نکند، بدام فری به هوا دروغ خواهد افتاد. کسی که برای هواخواهان دروغ آرزوی فیروزی کند و بدانها یاری بخشد، از هواخواهان دروغ به شمار خواهد رفت و کسی که درست کرداران را دوست داشته، بدانها عرج نهد در زمره پارسایان به حساب خواهد آمد ای hey, هستی بخش یکتا این قانون ازلی را از روز هستی یافتن بشر مقرر فرمودی بند هفت هنگامی که هواخواه دروغ با کینه و نفرت اراده آزار من کند ای مزدا، جز فروغ مینوی و اندیشه به تو چه کسی از من پشتیبانی خواهد کرد؟ زمانی که این دو فروزه در نهاد ما بیدار شده و با هم کار کنند، ای هستی بخش، آین راستی به حد کمال خواهد رسید. پروردگارا، حقیقت را بر من آچکار و وجدانم را به این آموزش بیدار ساز. بند هشت کسی که اندیشه آسیب رساندن به هستی جهان را در سر پروراند، به درستی از کردارهای زشت او آسیبی به من نخواهد رسید، بلکه نتیجه کردار زشت و نفرت او به خودش برخواهد گشت. کردارهای زشت و او را از انجام کار نیک و شناخت زندگانی کامل باز خواهد داشت و خشم و نفرت به هیچ وجه او را ای مزدا از زندگی نکبتباری که نصیبش خواهد گردید حفظ نخواهد نمود بند 9 کیست آن رادمرد بزرگ و نخستین آموزگاری که به ما آموخت تنها تو را ای پروردگار شایسته ترین ذات مورد ستایش بشناسیم و تو را داور پاک کردارها و سرور راستی بدانیم. پروردگارا ما کوشش خواهیم کرد که در پرتوه اندیشه پاک از قانون ازلی عشا و اسرار هستی پرده برداریم و آنچه که آفریننده جهان از آین راستی آشکار ساخته است، آگاهی یابیم. بند ده ای هستی بخش دانا از مرد و زن هر کس در این جهان آنچرا که تو به عنوان بهترین کار مقرر داشته ای به جایارد. چون این شخصی از پاداش اشا و خشت را که همانا نیروی معنوی و خدمت به مردم است و در پرتوه اندیشه پاک به دست توانا آورد برخوردار خواهد گردید. پانویز منظور از پاداش زندگانی سرشار از راستی و درستی و پاکی و پرهیزکاری است. ادامه متن پروردگارا من به آنان خواهم آموخت که تنها تو را پرستش کنند و هنگام گذر کردن از پل چینوت آنان را راهنمایی خواهم کرد. پانویس پل چینوت یا پل سرات پل داوری بین نیک و بد می باشد. ادامه متن صفحه 82. بند یازده کاویان و کرپان یا پیشوایان و شاهزادگان پرست، متحد گشته و سعی می کنند با کردار زشت و سیاه خود زندگانی معنوی مردم را تباه سازند. ولی هنگامی که به نزدیک پل چین رسند، از روان و وجدان خود شرمسار گشته، و سختی و آزار بینند و برای همیشه مجبور به زندگی در سرای دروغ خواهند شد بند دوازده هنگامی که خیشان و نوادگان نیرومند فریانه تورانی به آین راستی گروند و با عشق و ایمان در پیشرفت زندگی بشر و آبادانی جهان بکوشند آنگاه در پرتو منش پاک فریانه بین آنها همبستگی به وجود آورده و آین مزدایی که نوی بخش رستگاری و خوشبختی است بر آنها آشکار خواهد گردانید. بند سیزده کسی که اشو زرتشت اسپنتمان را خوشنود ساخته و او را در انجام ماموریت یاری کند مردی درست کردار و نیکو شناخته خواهد شد هستی بخش دانا و یکتا به چنین شخصی بهترین زندگانی خواهد بخشید و پیرامون او از محبت و منش پاک سرشار خواهد شد پروردگارا او را همگام با عشا و هواخواه قانون راستی خواهیم شناخت. پالیذس. عشا دوستدار راستی و پاکی و هواخواه نظم و قانون. ی متن. بند چهارده ای زرتوشت چیست دوست درست کردار تو که هواخواه خواه راستیست؟ چه کسی برای گسترش و نیکنامی انجمن برادری موق کوشش خواهد کرد؟ این شخص همانا گشتاس به کیانی شاهنشاه دلیر است. ای هستی بخش دانا، من پیام آسمانی تو را به مردم خواهم آموخت تا شایسته بارگاه تو گردیده و در سرای تو یعنی فردوس جایگزیند. ای فرزندان هیچت سپ و اسفنتمان اکنون به شما چیزی را خواهم آموخت که شنیدن آن برای شما بهترین اندرز خواهد بود و شما در پرتو آن دانا را از نادان باز خواهید شناخت پانویز. هیچ هیچکد سب پنجمین نفر از پشت اسفندمان و نیای بزرگ اشا ادامه متن صفحه 824 به علاوه شما در پرتو کردار نیک به اشا مظهر حق و راستی آنچنان که در قانون ازلی اهورا مقرر گردیده است دست خواهید یافت بند شانزده ای فرشوشتر از خاندان هووگووا گوا دینداران با را به سوی کمال و فروغ جاودانی که ما هر دو خاستار آنیم رهبری کن پانویس گورووگوا نام پدر و همچنین نام فامیل فرشوشتر و جاماسب این واژه را در پهلوی حبوب خوانند ادامه‌ی متن بدانجا که راستی و درستی و محبت و ایمان پیوستگی داشته و منش پاک و نیروی معنوی شهریاری دارند بدانجا که هستی بخش دانای بی همتا با شکوه و جلال آرام گزیده است بنده 17 ای جاماس دانا از خانواده هووگوا این نکته را بیاموز که جنبش و فعالیت بر بیکاری و تنبلی برتری دارد پس با وجدان بیدار و با کار و کوشش او را پرستش نما آن هستی بخش دانا و بی همتایی که در پرتو قانون ازلی خیش دانا را از نادان تمیز می دهد و برپادارنده این جهان است. بنده هجده بهترین چیز را به کسی نوید می دهم که با جان و دل مرا در انجام معموریتم یاری کند در پرتوه وهمن برای چنین شخصی بخشایش و محبتهای خود را نثار می کنم. اما کسی که با من دشمنی ورزد با او دشمن خواهم بود ای هستی بخش دانا در پرتوه راستی و درستی مشیت تو را براورده خواهم ساخت زیرا خرد و اندیشه مرا به این ره راه نمایند. بند نوزده کسی که از روی راستی و درستی بهترین آرزوی مرا که زرتشت هستم برآورده سازد چون این شخصی از زندگانی جاودان برخوردار گشته و در این جهان به خواستها و آرزوهای دلش دست خواهد یافت. و از بخشش های جهان بهره‌مند خواهد گردید. ای هستی بخش یک تا دانا. همه این نکته ها را تو به من آموختی. صفحه هشتا دو شش سپنتومدگات حات چهل هفت بنده یک کسی که در پرتو خرد مقدس و قلبی پاک اندیشه و گفتار و کردارش نیک و با راستی و درستی هماهنگ باشد مزدا اهورا با توانایی و مهر خیش به او رسایی و جاودانی خواهد بخشید بند دو کسی که در پرتو خرد مقدس به بهترین راه زندگی کند و گفتارش مهرامیز و از روی خرد باشد، با دو دستش کارهای نیک را از روی ایمان انجام دهد، اندیشش تنها متوجه یک تا پروردگار خواهد بود و او را سرچشمه حق و راستی خواهد شناخت. بند سه پروردگارا به راستی تو سرچشمه خرد مقدس هستی. این زمین شادی آفرین را تو آفریدی. هنگامی که مردم به منش پاک آورده و با اون مشورت کنند، ای مزدا تو بدانها آرامش بخشی و آرم ایتی ایمان را پشتیبان آنها قرار خواهی داد. بند چهار ای مزدا، کارانی که از خرد مقدس روی برتابند، رنج بینند. ولی درست کرداران هرگز چنین نکنند. پروردگارا، مردم درست کار را اگر کم درآمد و نادار باشند، باید گرامی داشت. ولی هواخواهان دروغ را چنانچه توانا و پردرآمد باشند، باید خار شمرد و از بدان به حساب آورد. بند پنج ای هفتی بخش دانا نیکوکاران در پرتو خرد مقدس تو از بهترین بخشش هایی که نوید داده شده است برخوردار خواهند شد. ولی مهر تو شامل حال بدکاران نخواهد گردید. زیرا کردار آنها از اندیشه زشت سرچشمه گرفته و آسمان روشن روحشان را عبر سیاه تبهکاری پوشانیده است. بند ای هستی بخش دانا در پرتو خرد مقدس و آذر فروزان فیش، سرنوشت دو گروه نیکان و بدان را تعیین و پاداش و کیفر آنها را ارزانی خواهی داشت. پروردگارا با افزایش فروغ ایمان و راستی و پاکی جویندگان حقیقت به سوی تو گرایش پیدا خواهند کرد. صفحه 827 پنتومدگات حاط چهل و هشت بند یک سرانجام در روز شمار و پاداش هنگامی که راستی بر دروغ چیره گردد و هنگامی که پرده از روی ریا و فریب دیوان و همدستان آنها برای همیشه برداشته شود، آنگاه ستایش و ایمان به تو ای هستی بخش گسترش خواهد یافت و باربر خوشبختی به بار خواهد آورد. بند دو پیش از اینکه کشمکش در اندیشم آغاز گردد ای هستی بخش یکتا مرا از ها آگاه ساز پروردگارا مرا اطمینان بخش که آیا شخص پارسا و پرهیزکار بر هواخواه دروغ و فساد فیروز خواهد گردید. مسلماً مشیت تو چنان است و این بزرگترین فیروزی در زندگی به شمار خواهد آمد. بند سه هستی بخش دانا و سرچشمه نیکی بهترین آموزش را به مردم دانا و پارسا خواهد آموخت آموزشی که همه پاکان و روشندلان و آموزگاران فلسفه عرفان از آن آگاهند یعنی تنها در پرتو خرد و اندیشه پاک میتوان ای مزدا از دلباختگان درگاه تو گردید بند چهار پروردگارا کسی که اندیشش نیک یا بد باشد کردار و گفتار و وجدان او نیز به نیکی یا بدی خواهد گرایید. راهی را که اندیشه به آزادی اختیار کند اراده و ایمان نیز از آن پیروی خواهد کرد و با آن هماهنگی خواهد داشت. بنا حکمت تو ای مزدا سرنوشت آنها از هم جدا و متمایز خواهد بود بنده پنج ای آرمیتی مگزا شهریاران ستمگر و بدرفتار بر ما حکومت کنند بلکه بشود شهریاران دادگر و با ایمان که دارای رفتاری نیکو و دانش و خرد راه هاست بر ما فرمان روایی کنند ای آرمیتی پاکیزگی برای مردم از هنگام زایش بخشش خداوندی به شمار می رود. ما باید برای آبادانی جهان و پیشرفت آفرینش کار کرده و هم خود را به سوی روشنایی و حقیقت رهبری کنیم بند در دراستی که او آرمیتی پناهگاه خوبی برای ماست و به ما پایداری تن و نیروی روان که از فروزگان با ارز منش پاک است خواهد بخشید. پانویس آرمیتی مظهر عشق و ایمان به خدا و پاسبان زمین. ادامه مطنع. حشتی بخش دانا و یکتا او یعنی زمین را با گیاه و سبزه بیاراست و از آغاز آفرینش برای مردم خوراک تهیه کرد. چنین است حکمت مزدا و قانون ازلی عشا. بند هفت خشم و نفرت را از خود دور کنید و اجازه ندهید اندیشه هایتان. به خشونت و ستم گرایش پیدا کند به منش پاک و مهر و محبت دلبستگی نشان دهید. رادمردان پاک سرشت برای گسترش راستی و درستی پیوند استوار خواهند ساخت و هواخواهان حقیقت را به سوی بهشت جایگاه تو ای اهورا که منزلگه راستان و پاکان است رهبری خواهند کرد بند هشت آرزوی من ای مزدا، برخورداری از میروی معنوی خشترای توست. پانویز میروی معنوی خشترا، چیرگی بر هوای نفس و خدمت به هم نوع در راه پیشرفت بشر به سوی تکامل می باشد. ادامه ی ولی خواست من برای برخورداری کسان و پیروانم از بخشش های تو ای هستی بخش یک تا بسیار زیادتر است. پروردگارا چقدر آرزو دارم در پرتو راستی و پاکی خود را به جانبازان وفادار و هواخواهان راه حق آشکارسازی سازی تا با یاری اندیشه پاک در پیشبرد برد کارهای نیک، خوشا صفحه 90 بنده نه. چگونه بدانم که تو ای مزدا بر همه حتی برانان که قصد آزار مرا دارند شهریاری می‌کنی ای عشا روش نیکندیشی و بهروزی را بر من آشکار ساز پروردگارا، مرا از نحوه برخورداری از بخشایش فیش آگاه فرما. زیرا یک سوشیاند یا پیمبر آسمانی باید از پاداشی که در انتظار اوست، نیک آگاه گردد. بند ده ای مزدا، یارانم برای گسترش دین اهورایی کی خواهد آمد؟ پروردگارا پلیدی دروغ و آز کی از پهنه گیتی برانداخته خواهد شد وسیلهی که موجب می‌گردد کرپان‌های سیاه‌کار مردم را بفریبند و شهریاران ستمگر با اندیشه های شوم بر کشورها حکومت کنند بند یازده ای مزدا. راستی و پاکی همراه با عشق و ایمان به خدا کی به سراغمان خواهند آمد و در پرتوه چیرگی بر نفس آشتی و ایمنی به ارمغان خواهند آورد. هنگام حمله سیحکار ستمگر و خونخوار چه کسی در برابر آنها ایستادگی خواهد کرد و چه کسی از دانش و بینش و برخوردار خواهد شد؟ بند 12 به راستی سوشیانت‌ها و رهانندگان گیتی از دانش و بینش برخوردار بوده وظیفه خود را با الهام از منش پاک انجام خواهند داد آنها کردارشان از راستی و پاکی سرچشمه گرفته با آموزش‌های توئی مزدا هماهنگی دارد آنان به درستی از بین برندگان خشم و نفرت و پدیداورندگان مهر و آشتی می باشند. صفحه 91 و یک حات چهل و بند یک ای مزدای پاکبی همتا دندبا بزرگترین سد راه من است و همیشه با گمراه کردن مردم احساس خرسندی می‌کند. پانویس دندبا یکی از دشمنان سرسخت اشو و و از بت پرستان فریبکار و فتنه‌انگیز و همدست گرهما بود. ادامه متن ای بخشنده مهربان به سوی من و مرا توانایی بخش تا در پرتو منش پاک بر او دست یافته و او را از گمراهی رهایی بخشم و از پاداش نیک برخوردار گردم بند دو به درستی های بندوه مرا نگران ساخته است زیرا آموزش او جز دروغ و فریب و گمراه ساختن مردم و دور نگه داشتن آنان از راستی و پاکی چیز دیگری نیست. او هیچگاه نسبت به پروردگار، دلبستگی و ایمانی پاک و استوار نشان نمیدهد و لحظه ای, ای مزدا با اندیشه پاک و ضمیر روشن به تو نمی‌اندیشد. بند سه پروردگارا تو برای مردم باورداشتن این آموزش را مقرر فرموده ای که راستی رستگاری بخش و سودمند است و دروغ نکبتبار و زیانآور. بنابراین آرزو دارم که مردم پیوند خود را با اندیشه پاک استوار سازند، و آمیزش خود را با دروغ و هواخواهان دروغ کاملاً بگسلند. بند 4 خردان و بدندیشان با زخم زبان خشم افزایند و رشک و حسد برانگیزند و کارگران درست کردار را از کار باز دارند این زشت کرداران گرایش به نیکوکاری نداشته و چنان به دروغ و نادرستی خو گرفتند که دیوان و ددانی انسان نما را مانند. بند پنج ای مزدا کسی که با خواست درون و جانبازی بین وجدان خود و منش پاک پیوستگی پیدا آورد، چون این کسی از عشق و ایمان به خداوند برخوردار و در پرتو راستی و درستی به زیور خرد آراسته خواهد گردید. و سرانجام با داشتن همه فروزگان معنوی ای اهورا در کشور جاودانی تو به سر خواهد برد. بند شش ای مزدا و ای اشا خواستارم که مرا از اندیشه پاک و حکمت خیش آگاه سازید تا حقیقت را باز شناسم و دینی را به جهانیان آشکار سازم که از سوی تو ای هستی بخش، الهام گردیده است. بنده هفت پروردگارا بشود همه با منش پاک و دلی روشن، به سخنانم توجه کنند و از روی پاکی و راستی آن را به گوش هوش بشنوند. ای هستی بخش هنگامی که پیام مقدس تو را به مردم میآموزم گواه باش تا یاران و خودمانی ها برابر قانون ایزدی زندگی کرده و برای همکاران راهنمای نیکی باشند پانویس در مورد یاران و خودمانی ها و همکاران به توضیحاتی که در زیرنویس بند اول هات سی ذکر شده است مراجع شود. ادامه مطم صفحه نود سه بند هشت ای هستی بخش دانا به فرشوشتر بهترین بخشش اشا را که هم... صفحه 93 بند 8 ای هفتی بخش دانا به فرشوشتر بهترین بخشش اشا را که همانا پیوستگی و رسیدن به پروردگار است ارزانی دارد و همین بخشایش را در مورد سایر مردم و پیروانم دریغ مدار پانویس فرشوشتر یکی از یاران بسیار وفادار و صمیمی پیامبر و برادر جاماس بود ادامه متن بشود که در پرتو را نیروی معنوی و مقدس به مردم خدمت کنیم و از دوستداران تو باشیم بنده خدمتگذاری که برای رهایی مردم از تنگناها آفریده شده است باید این دستور ایزدی را به گوش هوش بشنود که شخص راستگو هیچگاه اندیشه آمیزش با دروغگویان و تبهکاران را به خود راه نخواهد داد ای جماص به حکیم کسانی که با دین و ایمان و دارای وجدانند با راستی و پارسایی پیوستگی داشته و سرانجام از بهترین پاداش یعنی بهشت برخوردار خواهند شد بند ده ای مزدا با درود به آرمیتی مظهر ایمان و فروتنی و خاستهای درون این گوهرهای گرانبها یعنی روان نیکندیشان و درست کرداران را برای نگهداری به تو می سپارم چون که توی شهریار بزرگ و نیروی پایدار و جاودانی بند یازده روان شهریاران ستمگر و بد کرداران و زشت گفتاران و سیه و کجندیشان و هوا خواهان دروغ به دوزخ یا سرای دروغ باز خواهند گردید زیرا زمیر روشن آنها روبه تیرگی نهاده است و از روشنایی و حق دور گشتند بند دوازده پروردگارا آیا پرستندگان تو در پرتو آشا از کدام یاری؟ خوردار خواهند شد. آیا زرتوش نیز در پرتو ووهوماً از کمک تو بهرهمند خواهند گردید. ای هستی بخش دانا با سرودهای شایسته تو را ستایش کرده؟ آرزو دارم آنچه را که در نزد تو گراهیترین است به من ارزانی داری؟ صفحه نوود و پنج بند یک آیا روانم پس از مرگ از یاوری چه کسی برخوردار خواهد شد؟ آیا هنگام گرفتاری چه کسی از من و یاران و پیروانم نگهداری خواهد کرد؟ ای هستی بخش دانا جز اشا مظهر راستی و پاکی و وهمن مظهر منش پاک و روشندلی هیچ کس دیگر گرهی از گرفتاریم نخواهد گشود البته اگر بانیت پاک به کمک خواسته شوند فند دو ای مزدا کسی که همیشه به اندیشه ایمنی و سود خیش است، چگونه به جهان خرمی بخش مهر خواهد ورزید. پارسایانی که برابر هنجار هستی و راستی و پاکی زندگی می کنند در مکانی که از پرتو خورشید تو درخشان و منزلگه دانایان است به سر خواهند برد. پانویز، منظور بهشت است. ادامه ی متن. بند سه ای مزدا کسی که نیروی معنوی خشترا و وهمن راهنمای او در زندگی است به آشا سرچشمه حقیقت خواهد رسید و همچنین کسی که در پرتو بخشایش ایزدی به پیشرفت و آبادانی این جهان دوست داشتنی که دروغ و ریا آن را فرا گرفته است، کمک کند، از یاری عشا برخوردار خواهد شد. بند چهار ای هستی بخش یک تا، با سرودهای ستایش تو و همچنین عشا، وهومن و خشترا را را میپرستم، و خواستارم که در فرازین راه آسمان حقیقت گام نهاده و به آبای حق که از دوستداران تو در گروتمان برخواهد خواست گوش فراده هم پانویز پشا، وهمن و خشترا، مظاهر راستی و پاکی و نیکندیشی و روشندلی، نیروی معنوی و توانایی و چیرگی بر نفس ادامه مدن صفحه 96. بند پنج ای هستی بخش دانا و ای جلوگاه راستی و پاکی با مهر و محبت به سوی سراینده سرودهای آسمانی یا پیانبر خیش رویارید. ویاری و پشتیبانی خود را از اون دریغ ندارید تا بتواند ما را به روشنایی ابدی و خوشبختی جاودانی رهنمون گردد. بند شش ای هستی بخش بزرگ زرتشت دوستدار عشا با آوای بلند تو را ستایش کرده و چنین آرزویی دارد پروردگارا همیشه زبانم را با گفتار شیرین و اندیشمند همراه ساز و خرد را راه نمایم کن. آفریدگارا در پرتو منش پاک مرا من از دستورهای اخلاقی برخوردار ساز و الهام بخش. بنده هفت ای پاسدار آزادی و ستایش سزا ای هستی بخش دانا با نماز و نیایش به درگاه تو راه خواهم یافت و در پرتو راستی و منش پاک به تو خواهم پیوست. پروردگارا مرا رهبری فرما و در کارها یاور و پشتیبانم باش. بنده ه ای هستی بخش دانا با سراییدن سرودهای موزون گاتاها که از شور و شوق دلم برمیخیزد و با دستهای برفراشته به تو روی آورده خواستارم ای مزدا چون دوستداری با وفا و فروتن در پرتو راستی و پاکی و خرد شگفتی آفرین وهومن به تو نزدیک گردم. بند نه ای خداوند خرد و جلوه راستی و درستی، در پرتوه کارهایی که از خرد و نیکمنشی سرچشم گرفته است و با سرودهای مقدس ستایش کنان به سوی تو باز خواهم گشت. پروردگارا با آگاهی از سرنوشت خیش و با شوق بسیار آرزومندم تا از دانش و حکمت الهی برخوردار گردم، ده پروردگارا بشود کارهایی که در گذشته انجام شده و آنچه در آینده از روی خرد و اندیشه پاک انجام خواهم داد از دیدگاه تو شایسته بوده و مورد پسند درگاهت باشد ای خداوند جان و خرد تابش خورشید و روشنایی سپیددم دم بام داد برابر هنجار هستی نمایانگر فر و شکوه توست قنده یازده ای مزدا خداوند خرد. من ستایشگر تو بوده و تا زمانی که مرا تاب و است به راه راستی خواهم رفت و ستایشگر تو خواهم ماند بشود که آفریننده جهان در پرتوه منش پاک، بهترین آرزو و خاست درست کرداران را که پیشرفت و آبادانی جهان است، برآورده سازد. صفحه 98 و هشت حات پنجاه و یک بند یک خشت را نیروی الهی و بخششیست بسیار ارجمند. که چون بارانی ملایم از عرش به زمین می‌بارد. و خاسته های درون جانباختگان راه حق را در پرتو عشا به خدمت گذاری مردم برخواهد انگیخت. ای مزدا بهشت با نیکوکاری به آید. پس برای همیشه در انجام کار نیک کوشا خواهم بود. بند دو نخوست کردارهای نیک خود را به تو ای خداوند جان و خرد و اشا جلوگاه راستی و پاکی نیاز می کنم. و سپس به تو ای آرمیتی جلوگاه ایمان و عشق پاک پروردگارا مرا از نیروی معنوی خود آگاه فرما و پرستندگان با وفای خود را در پرتو منش پاک رستگاری بخش. بند سه به سخنان کسانی گوش فرادهید که با کردار نیک و گفتار راست و منش پاک ای هستی بخش یکتا خواستار پیوستن به تو هستند کسانی که تو خود نخواستین آموزگار و الهام بخش آنانی ای مزدا بند چهار نوردگارا مهر فوزون از اندازه تو کجاست و کی رحمت و بخشایش تو پرستنده با باوفا را در بر خواهد گرفت راستی و درستی را کجا میتوان به دست آورد ایمان و عشق پاک به خدا را کجا میتوان یافت برترین منش را در کجا میتوان جستجو کرد و نیروهای شهریاری و سروری تو ای مزدا از کجا سرچشمه می‌گیرد این پرسش ها از رهبر درست کرداری است که با فروتنی در پی اندوختن دانشی جرف و نیکو بوده و راه پیشرفت آفرینش را برابر با هنجار هستی به مردم نشان دهد رهبری که چون داوری دادگر و توانا از روی دانش و خرد راستی آموزد و بخشایش آورد. بند 6. خداوند جان و خرد در هر شهریاری خیش به کسی که خواست او را به جای آورد و به پیشرفت آفرینش کمک کند پاداشی بهتر از نیک بخشد. ولی کسی که خواست او را انجام ندهد و برای پیشرفت و آبادانی جهان کوشش ننماید، در روز واپسین به کیفر زشتی کردار خیش گرفتار گردد. بنده هفت ای آفریننده زمین و آب و گیاه ای مزدا، در خرد مقدس خیش رسایی جاودانه را به من بخش. پروردگارا به من توانایی و پایداری بخش و در پرتو منش پاک آموزش های ایزدی را بر من آشکار ساز. بند هشت ای مزدا، پیام آسمانی تو را من به مردم دانا آشکار خواهم ساخت، تا بدانند چه سرنوشت شومی در انتظار دروغگویان و تبهکاران است؟ وچگونه هواخواهان راستی و نیکوکاران از خوشبختی برخوردار خواهند گردید بیگمان خرسندی و خوشبختی از آن کسی است که پیام آسمانی تو را آشکار سازد بند نوح ای مزدا، هر دو گروه یعنی هواخواهان راستی و دروغ از راه آتش فروزان معنوی آزمایش خواهند شد و این آزمایش آتشین سرنوشت هر یک از دو گروه را آشکار و نشانی بر پاداش تو خواهد بود پیروان دروغ و تبهکاران را رنج و اندوه نصیب بوده هواخواهان راستی از شادی و سود بهرهمند خواهند گردید بند ده ای هستی بخش دانا کسی که کوشش می کند جهان را به گمراهی کشاند و از اصل راستی و حقیقت دور سازد چون این شخصی از تبار زشت کرداران و کوته فکران به شمار می رود. من برای خود و کسان خیش را به یاری میخوانم و آرزو دارم به سوی ماناید و ما را از پاداش نیک برخوردار سازد بند یازده ای مزدا کیست آن دوست با وفایی که به زرتشت اسپندمان یاری کند؟ او آن کسی است که دلباخته راستی و در جست و جوی عشاست کسی که با عشق و ایمان است و با منش پاک هوا خواه انجمن برادری است و زندگانی خود را در راه پیشرفت انجمن مغان وقف خواهد کرد. پانویز انجمن مغان یا انجمن برادری از کسانی تشکیل شده بود که به آموزش زرتشت ایمان کامل داشتند و تحت رهبری پیمبر در نوسازی جهان کوشا بودند. از اعضای مهم آن ویشتاسب، فرشوشتر، جاماسب و میدیو ماه بودند. ادامه متن صفحه 101 بند دوازده فرید خردگان مکتب کاوی هیچگاه در دوران زندگی خیش زرتشت اسپندمان را برساند و خوشنود نمی سازند. گرچه هستند افرادی که با کوشش و پشتکار و روحیه قوی میتوانند توانند به رسایی دست یابند و رستگار گردند. بند سیزده براستی هوا دروغ اندیشه پویندگان راه راست را پریشان کرده و ایمان آنها را متزلزل می سازند. ولی در روز واپسین، روان آنها بر سر پل چینوت به علت کردار و گفتار زشت و انحراف از راه راستی آنها را آشکارا سرزنش خواهد کرد. بند چهارده کرپانها هیچ وقت نسبت به دستورات و قوانین الهی توجه ننموده و احترامی نمیگذارند. آنان خدمتگزاران جهان را با کردارهای زشت و آموزشهای نادرست خیش به تباهی میکشانند. و سرانجام در نتیجه آموزشهای گمراه کننده خود نیز به سرای دروغ یا دوزخ اندر خواهند شد. بند پانزده پاداشی را که زرتشت به مغان و برادران دینی از پیش نوید داده است، گروه ایمان یا خانه سرود و ستایش و بهشت است. جایی که از روز ازل منزلگاه هستی بخش دانا بوده است. این پاداش را که چون بخشش الهی است و تنها در پرتو اندیشه پاک و راستی به دست توان آورد به شما نوید می دهم. بند شانزده در پرتو نیروی معنوی انجمن برادری و سرودهای محبت که از منش پاک الهام گرفته است، کی گشتاسب به آن پاداش دست یافت و در پرتو عشا از دانشی برخوردار شد که هستی بخش دانا و پاک مقرر فرمود دانشی که ما را به سوی خوشبختی و راستگاری رهنمون گردد بنج 17 فرشموشتر هوو گوو وجود خیش را که عزیزترین چیز است در راه خدمت به پیشرفت دین بهی مزدیتنا نثار کرد بشود که هستی بخش دانا و توانا آرزوهای او را برآورده سازد تا به اشا دسترسی پیدا کرده و به درک حقیقت نائل آید بند هجده جوامس به دانا از خانواده هووگوو که خواستار روشنایی حقیقت است در پرتو راستی دانش الهی را برای فیش برگزید و در پرتو منش پاک به نیروی معنوی دست یافت ای هستی بخش یکتا و ای خداوند دانا بخشش‌های نامبرده را به ما ارزانی دار تا نسبت به تو دلبستگی پیدا کنیم بند نوزده میدیو ما از دودمان اسفنتمان مردی است که با آگاهی کامل از دین مذهبیتنا زندگانی خود را وقف پیشرفت آیین من کرد او کسی است که کوشش دارد زندگی معنوی را به مفهوم واقعی درک کند و آین مزدار را با کردار و خدمت به مردم بهتر به جهانیان بیاموزد بند 20 ای امشاسپندان شما همه همفکر و همگام بخشایش نیک را به ما مردم ارزانی دارید پانویس واژه همگام و همفکر همیشه به مفهوم امشاسپندان گرفته شده و در این بند نیز با نبودن واژه امر همان مفهوم اراده شده است ادامه دو آین راستی و پاکی و منش نیک را به ما بیاموزید که عشق و ایمان به خدا در نهادمان افزایش یابد پروردگارا ما با قلبی آکنده از مهر تو را میپرستیم، و خواستاریم به شادی و خوشبختی جاودانی مزدا دست یابیم. بند 21 مرد با ایمان و خداشناس پارسا و پرهیزکار است و اندیشه و گفتار و کردار و وجدانش به افسایش و گسترش راستی کمک خواهد کرد. در پرتوه منش پاک و چیرگی بر نفس، هستی بخش دانای بی همتا بخشایش خیش را به ما ارزانی خواهد داشت. پانویز بخشایش اهورایی عبارتند از آرامش اندیشه و وجدان و روشنایی زمیر و بینش دل، نیروی اراده و بیمیازی از خاسته دنیاوی و برخورداری از خرسندی و خوشبختی سرمدی، ادامه متن پروردگارا برای برخورداری از این بخشش نیک به تو روی میآورم و آن را خواستارم بند بیست و دو. کسی که در پرتو راستی و پاکی هر کاری را چون پرستش پروردگار انجام دهد از دیدگاه هستی بخش دانای بزرگ بهترین حستی هاست کسانی که در گذشته و حال چنین بوده و هستند آنان را با احترام و به نام یاد کرده و کوشش خواهم کرد با کردار نیک به مقام والای آنها برسم صفحه 105 و هیشتوا یشتگات حات هات و سه یسنا بند یک همه خواسته های اشوزر تشت اسپنتمان به بهترین وجهی برآورده شده و اهورا مزدا هستی بخش دانا او را از بهترین بخشایش برخوردار ساخته است. بدی معنی که یک زندگانی خرم و نیک و سراباپارسایی پا برای همیشه به او عنایت فرموده و حتی کسانی که با او دشمنی میورزیدند آموختند که به او احترام گذارند و در گفتار و کردار از آین بهی پیروی کنند بند دو ای دون همه با اندیشه و گفتار و کردار بکوشید تا مزدا را خشنود سازید و هر یک انجام کار نیک را برای نیایش او برگزینید. که گشتاس، هواخواه زرتشت و ماه و فرشوشتر راه راست و دینی را اختیار کردند که از سوی اهورا به سوشیانت نجات دهنده بشر الهام و آشکار گردیده بود پانویز منظور از سوشیاند در این بند خود اشوزر تشت می باشد ادامه متن بند سه ای پروچیسته اردودمان مان سب از خاندان اسپنت ای جوانترین دختر زر مزدآهورا او را که به منش پاک و راستی و پاکی دلبستگی و ایمان دارد به عنوان سرور و همسر به تو بخشید پس برو با خردت نیک مشورت کن و با عشقی پاک و آگاهی کامل رفتار نما بند چهار من کسی را که به عنوان پدر و سرور شهشاگران و خودمانی ها گمارده شده است، دوست خواهم داشت و به همسری میپذیرم. پانویز منظور از من پروچیسته دختر اشوزر می باشد. ادامه ی صفحه 106. صد و شش. بشود که در بین پارسایان، زنی پاکدامن و شایسته باشم و از شکوه یک زندگانی سراسر نیکمنشی برخوردار گردم. بشود که مزدا اهورا مرا همیشه از آموزش های حکیمانه دین بهی برخوردار سازد. بند پنج این سخنان را به نوعروسان و تازه دامادان میگویم. امیدوارم اندرزم را به گوشه هوش بشنوید و با زمیری روشن آن را نیک دریابید و به خاطر بسپرید همیشه با نیکمنشی و مهر و محبت زندگی کنید و در راستی و پاکی کوشش کنید از یکدیگر پیشی جویید چه بیگمان از زندگانی سرشار از خوشی و خوشبختی برخوردار خواهید شد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 از راه نادرست و بدبختی و بیچارگی دیگران به آید، جز رنج و افزوز چیزی را به بار نخواهد آورد. و تبهکاران و دروغ پرستانی که در پی تباهی درست کردارانند، راستی زندگانی معنوی و آرامش روحی خود را از بین خواهند برد. بند هنگامی که به آین آزادگی و برادری پایبند باشید و مادام که عشق و وفاداری ریشهدار در دلهای شما جفت جوان یعنی عروس و داماد وجود داشته باشد چه در این جهان و چه در زندگانی دیگر از بهترین پاداش بهرهمند خواهید شد ولی هرگاه گرفتار روح پلید اهریمنی و وسوسه های شیطانی شده و از آین آزادگی و برادری دست بردارید پیامد آن جز رنج و اندوه و بانگ دریغ و افسوس چیز دیگری نخواهد بود بند 8 به راستی و تبهکران سرانجام فریب خورده و مورد ریشخند مردم قرار گرفته خود را سرزنش خواهند کرد. بشود که در پرتو رهبری درست کردار و شهریاری دادگر زنان و مردان در دودمان خیش و در روستاها از آرامش و آسایش و صلح و آشتی برخوردار گردند. بشود که ریا و فریبکاری که چون زنجیر انسان را به تباهی میکشاند از پهنه گیتی برانداخته شود